افسونه افسانه به نام خداوند دوستی ها. سلام افثانه های هر ملتی بخشی از هویت اون ملت به حساب میان و شنیدن اونها جذابیت خاص و پیام خودش رو داره دنیای پر از پیام افسانهها دنیای رمز و رازه رمز و رازهایی که با زندگی روزمره ما گره خورده و سینه به سینه و به طور شفاهی منتقل شدن افثانه ها قصه های زندگی داستان‌های خوب گرفته با عشق و امید و مهربانی این هفته با افسانه از آسیای شرقی در خدمت شماییم افسانه حقشناسی روباه از کشور ژاپن با ترجمه از اردشیر نیکپورد روزی روزگاری در گذشته‌های دور پیرمرد و پیرزنی در دهکده‌ای دور در سرزمین ژاپن زندگی می‌کردند. اونها وضع مالی چندان خوبی نداشتند و تنها دارایی اونها شالیزار کوچکی بود که پیرمرد از صبح تا غروب توی اون کار می‌کرد و از راه فروش محصول برنج اون امرار معاش می‌کردند. این زوج پیر از زندگیشون شکایتی نداشتند. و تنها آرزوشون این بود که برای روزهای نداری و درموندگیشون درامدی پسنداز داشته باشن اما درامد اونها کفاف اینو نمیداد. تا اینکه یه روز غروب پیرمرد و همسرش توی ایوون نقلی خونشون نشسته بودن و همینطور که کلوچه برنجی با چای میخوردن با هم گپ میزدند. زدن یو تو فکر میکنی اگه یه روزی دیگه نتونم کار کنم اون وقت چه بلایی سرمون میاد کی به دادمون میرسه ما که نه فرزندی داریم و نه پسندازی نگران نه, نه سانچو بالاخره یه روزی پسنداز میکنیم آه. فردا صبح زود میرم بازارو تمام برنجا رو میفروشم من مطمئنم که مقداری پول برای پسندازمون میمونه سانچه لبخندی گوشه لب پیرمرد و چیندا نگاهش به اولین ستاره که توی آسمون جا گرفتی بود خیره شد و از زیر لب گفت خدا کنه همینطوری که میگی باشه فردای اون روز پیرمرد تموم برنجاش رو توی کیسه بزرگ گریخت و به طرف بازار شهر به راه افتاد ساعتی بعد پیرمرد در هیاهوی بازار بود و در انتظار اومدن مشتری مدتی گذشت پیرمرد که خسته شده بود گوشه زیر سایبون دکانی نشست و به دور دست ها خیره شد چند لحظه بعد صدایی پیرمرد رو به خودش آورد. پدرجان <تصفح> این کیسه برنج چند میفروشید اینا پنج سکه میفروشم میخریم البته که میخرم باید این برنج رو زودتر ببرم خونه امشب عروسی پسر بزرگمه میخوام به همه پلو مفصلی بدم خوبه خوبه مبارک باشه کاش مالوکیان پیرمرد سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت مرد خریدار فوری سکه ها رو به پیرمرد داد و با عجله کیسه برنج و برداشت و در هیاهوی بازار گم شد پیرمرد به دکان خاربار فروشی رفت و مقداری مواد غذایی خرید و هنوز چند سکه براش باقی مونده بود اون از این موضوع خوشحال شد و با خودش گفت حالا میتونیم این چند سکه رو برای روز درموندگی من پسنداز کنیم از من از دیدن این سکه های باقی مونده خیلی خوشحال میشه اونا رو توی صندوق چه چوبیش نگه میداره پیر زن بیکاره پیرمرد قدماشو تند و تند تر کرد و به طرف دهکده به راه افتاد تا هرچه زودتر این خبر رو به همسرش بده و اونو خوشحال کنه پیرمرد نزدیک خونش که رسید گروهی از بچه ها رو دید که دور روباه کوچیکی حلقه زدن و سر و صدای زیادی را انداختن پیرمرد با کنجکاوی جلوتر رفت و به آرومی خودشو در میان حلقه بچه ها جاداد روباه بیچاره بد جوری ترسیده بود یکی دومشو میکشید و یکی گوشاشو با شدت تکون میداد و فشار میداد روباه بیچاره از درد به خودش میپیچید و ناله میکرد. پیرمرد دلش به حال روباه سوخت. آرام زانو زد و دستی بر قهوه ای رنگ اون کشید موجی از التماس و خواهش توی چشمای ریز روباه پخش شد دل پیرمرد از دیدن روباه بیچاره به درد اومد در این موقع یکی از بچه ها که شیطنت از چشماش می بارید دوم روباهو کشید روباه ناله کرد پیرمرد بی اختیار فریاد زد مشکلید چی کار به این حیوان زرون بسته داریم، به نشکنیم شکار اون آره، این رو با ما گرفتیم خودمونه من کنیم حرف بره، اکیت درمون بخواست درش بیاریم آره، ایگه اون ماله، ما اونه گرفتیم ماله خودمونه بله، بله، ماله شماست، درسته اما آخه چرا عذیتش بکنیم، گناه دره حیوان زبون بسته بچه ها بدون بدون به حرفای پیرمرد باز هم به جون روباه بیچاره افتادن و به ضرب چوب اونو از جا بلند کردند. حیوان بی زبون می نالید. پیرمرد باز هم اعتراض کرد ولی هیچ فایده ای نداشت و بالاخره یکی از بچه ها گفت پیرمرد لحظه سکوت کرد ناله های روباه توی گوشش میپیچید و و قلبشو به درد می آورد بچه ها منتظر جواب پیرمرد بودند. اون آهسته با خودش گفت اگه اگه بایی سکه این روباه بیچاره رو بخرم اون وقت بخ... برای پسنداز آیندهمون پولی باقی نمیمونه طبعه جواب یو چی بدم اون حتما خیلی اصابانی می بلی نه من که هنوز طوان کار کردن دارم میتونم پول پسندازمون رو دوباره جور کنم آی عمو چی شدی چی با خودت حرف میزنی؟ بالاخره این باهم میخوری یا نه؟ آوه بله بله من رو میخورم بله پیرمرد سکه ها رو از جیبش در آورد و اونها رو یکی یکی شمرد و به بچه ها داد. بچه با خوشحالی و سر و صدای زیادی از اونجا دور شدن و پیرمرد و روباه زخمی رو تنها گذاشتن اون خم شد و روباه رو از دام بیرون آورد و بهش گفت تو آزادی شهر جای تو نیست بهتر زودتر از اینجا بری برو برو زودتر برو اما حیوان بیچاره با اون پای زخمی و بیرمقش توان اینو نداشت که از سر جاش حتی کوچکترین تکونی بخوره و مدام ناله میکرد. پیرمرد روباه زخمی و در آغوش گرفت و دستی بر پوست قهوه‌ای و نرم روباه کشید و با دلسوزی گفت: ای بیچاره، من خودم تو رو به جنگل میبرم. اینجا موندن برای تو خطرناکه. روباه نالهی کرد و پیرمرد در حالی که روباه رو در آغوش گرفته بود، به طرف جنگل که فاصله زیادی با دهکده نداشت، به افتاد. به نیمه جنگت که رسیدند پیرمرد روباه رو روی زمین گذاشت و گفت جای تو اینجاست نه توی شهر میونه اون همه آدم و شلوغی بعد با مهربونی دستی بر کرکهای نرم و براغ روباه کشید روباه با چشمای ریزش به پیرمرد نگاهی انداخت نگاهی هاکی از تشکر و حق شناسی پیرمرد تبسمی می کرد و زیر لب گفت لاافظ دوست من یادت باشه دیگه به طرف شهر نری. روباه آروم دمش و تکون داد. خورشید داشت غروب میکرد پیرمرد با قدمهای سنگین به طرف دهکده راه افتاد. خونه که رسید هوا تاریک شده بود و یوکی با نگرانی در آستانه درب انتظار ایستاده بود یوکی با دیدن همسرش نفسی به آرامش کشید و از اون خواست علت دیر اومدنش رو توضیح بده و پیرمرد تمام ماجرا رو مو به مو برای همسرش بازگو کرد یوکی از اینکه همسرش تمام پول پسنداز رو به آسونی از دست داده بود عصبانی بود و تمام شب رو زیر لب قرولند می کرد و تا مدتها از دست همسرش ناراحت و دلخور بود مدتی که گذشت اونها باز هم قروبها توی ایوان نقلی خونشون می نشستن و چای و کلوچه برنجی می و با هم گپ میزدند و خاطرات گذشتشون رو مرور میکردند و از آرزوهاشون میگفتند. چند روز بعد که پیرمرد ای دراز کشیده بود و در حال چرت زدن بود یوکی پیر که از تنهایی حسل اشتر رفته بود و حیات رفت و مشغول جارو کردن شد در این موقع سر و کله روباهی پیدا شد پیرزن که از دیدن روباه ترسیده بود به گوشهای رفت و پناه گرفت و از دور روباه رو میپایید روباه هم مرتب توی حیات خونه میچرخید و انگار دنبال چیزی میگشت پیرزن که یک دفعه یاد پول پسنداز از دست رفتشون افتاد قرولوند کنان گفت ما لعنتی یه روبا مثل تو باعث شد تموم پول پسندازمونو هدر بدیم حالا تو من اینجا که چی بشه ها؟ من از روبا جماعت دل خوشی ندارم زود از اینجا برا روبا لعنتی بارو دیگه برو. پیرزن چوبیو که در کنارش افتاده بود برداشت و به طرف روباه هجوم برد بعد چوبو تهدید کنن توی هوا چرخوند ولی روباه از سر جاش تکون نخورد و همینجوری به پیرزن نگاه میکرد آه آه آه؟ به چی نگاه میکنی؟ ها اگر اینجا نری با این چوب میزنم مغزتو داغو میکنم بایستاده بر روبر منو نگاه میکنه روباه نس لنه زن یه بار دیگه از کوره در رفت و چوب و به علامت تهدید توی هوا چرخوند اما روباه از جاش بازم جم نخورد که نخورد و همینجور داشت به پیرزن نگاه میکرد پیرزن که دیگه از بی روباه هرسش گرفته بود با صدای بلند همسرشو صدا زد های سانچو سانچو بیا و این روباه موزیر از اینجا دور کن پیرمرد که از سر و صدای همسرش چرتش پاره شده بود بلند شد و سر جاش نشست. هنوز توی چرت بود و کمی گیج. صدای عصبانی همسرش اونو به خودش آورد. سانچا، صدامو میشنوی؟ تا چه پای این روباهو تو این خونه کردی حالا بیا و درستش کن. روباه دور خودش میچرخید و به تهدید و سر و صدای پیرزن اعتنایی نمیکرد. پیرزن این بار با صدای بلندتر همسرش رو صدا زد. پیرمند که دید قضیه جدیه سراسیمه خودشو به ایوان و با دستپاچگی گفت چی شده یو کی؟ چی شده؟ چه دادو دادا حبار میکنی؟ زودتر این حیوان موزی را از جل دور کن یه روبا؟ این اینجا چیکار کار میکنه؟ اینجا چیکار میکنه؟ از من بیپرسی؟ این تو بوده که پول رو به یک از این روباهای موزی دادی؟ یادت رفته؟ تو تو اینجا چی کار میکنه؟ لابد این یکی هم مثل اون یکی اومده پول ازمون همون بگیره زودتر از اینجا برو ما دیگه هیچ پولی نداریم برو برو لعنتیم برو روباه با دیدن پیرمرد خودش رو به اون نزدیک کرد پیرزن کمی ترسید و عقب ترکشید چوب تهدیدی رو که هنوز توی دستاش بود جابجا جا کرد. پیرمرد دستی بر گردده قهوه روباه کشید. روباه به حرف اومد. پیرمرد مرد محرمون. من همون رومای هستم که تو من دست اون بچه های بیرم آزاد کردی؟ ها؟ تو تو چه جوری اومدی اینجا؟ از ما چی میخوای؟ اومدم تا در برابر مهربونی و لطفی که در حق من کردی؟ هر کاری داشته باشی برات انجام بدم ما هیچ کاری نداریم باد برو فقط زودتر تا با این چوب خورد و خمیرت نکردم برو از اینجا زن این چه حرفیه تو که از اون بچه ها میبینی که اون اومده از من تشکر کنه همین ما تشکر لازم نداریم ما به اون سکه های پسند راست نیاز داریم بس اتو... کن یوکی بس کن بذار ببینم این حیون قدشناس چی میگه <تصفيق> قدشناس روباه پوزه گردشو به زانوان لاغر و استخونی پیرمرد مالید پیرزن گرهی به ابروانش انداخت و به داخل اتاق رفت روباه توی دست و پای پیرمرد میلولید و پیرمرد اونو نوازش میکرد. پیرمرد با مهربونی گفت من از اینکه دوباره تو رو می‌بینم خوشحالم ولی تو باید زودتر به جنگل برگردی اگه اگه این بار هم اسیره دست اون بچه ها بشی دیگه من پولیم ندارم برای آزادی تو بدم میدونه ولی من اومدم اینجا که یه چیزی بگم چه چیزی چی میخوای بگی دومه ای در این حوالی وجود داره که راهب پیری توی اون زندگی میکنه اون علاقه زیادی به اشیای عتیقه داره و هر روز برای تهیه اشیای عتیقه به این طرف و اون طرف میره و اشیای قدیمی رو به قیمت خوبی از این اون میخره ولی من که اشیای عتیقه ندارم میبینی که ما وضع چندان خوبی نداریم ما فقط یه مزرعی کوچیک داریم میدونم ولی اگه بخوای من میتونم خودمو به شکل قوری قدیمی و بسیار زیبایی در بیارم اون تو به نه نه نه نه من حاضر نیستم تو به شکل قوری در بیای؟ نه نه نه من مطمئنم اون راهب در برابر قوری پول خوبی به تو میده و تو میتونی با اون پول برای روزهای نداری و درموندگید پسندازی داشته باشی نه نه نه نه من دلم به این کار راضی نیستم حالا بهتر زودتر به جنگل برگردی اینجا جای امنی برای تو نیست برو روباه توی چشمای پیرمرد مهربون خیره شده بود و پیرمرد هنوز دست نوازشگرش رو روی گرده قهوه‌ای رنگ روباه می کشی. صدای یوکی همسر پیرمرد از توی اتاق به گوش می رسید بیا تو میکن اون هوا داشت تاریک میشد یوکی همسر پیرمرد که دید سانچو همسرش هنوز داره با روباه صحبت میکنه از اتاق اومد بیرون و نگاهی به روباه انداخت و گفت ببینم تو چرا دست هسته ما نمی داری. ما دیگه پولی نداریم خرج تو کنیم. حس بهتره هر زودتر دم تو روی کولت بذاری از اینجا بری وگرنه من سر همسرتون پیشنهاد خوبی دادم اگه قبول کنه حتما وضع زندگیتون رو برق میشه ها پیشنهاد چه پیشنهادی پیرمرد پیشنهاد روباهو و برای همسرش بازگو کرد و تأکید کرد که اون دلش به این کار رازی نیست پیرزن که از این پیشنهاد خوشحال شده بود با خوشحالی و هیجان گفت <تصفيق> خدای من چه پیشنهاد فوقلاده ای این کار میتونه زندگیمونو حسابی روبراد کنه سانچو تا باید این پیشنهاد و قبول کنی عزیزم اینجوری اینجوری شاید نظر منم راجبه به روباها عوض بشه خب سانچو چی میگی ها ادمن قبول میکنی نه یوکی یوکی من دلم به این کار راضی نیست سب کن ببینم اصلا اصلا ما چرا باید حرف این روباهو باور کنیم ها؟ آخه چجوری اون میتونه رو به شکل یک قوری قدیمی در بیاره ها؟ یوکی تو هنوز نظرت داجی به روبا ها عوض نشد این روبا که بازه ا ا ا ا واسه ببینم اگه راست میگی همین الان رو به شکل قوری در بیار ببینم یا لذوت باش نه نه نه نه این کار نکن اما دیر شده بود و روباه در عرض چند لحظه دومشو به دور پاهای عقبی خودش پیچوند سرشو به پایین انداخت و چند بار دور خودش چرخید و بعد هم نابدید شد بله به جای روباه یک قوری برونزی عتیقه بسیار زیبا باقی مونده بود که لولش به شکل پوزه روباهی به نظر می رسید پیرمرد و پیرزن هاج و واج به همدیگه نگاه می کردن. پیرمرد از فداکاری روباه به فکر فرو رفت و پیرزند که حالا دیگه به خودش اومده بود با خوشحالی قوری رو از زمین برداشت و با دقت زیاد اونو برانداز کرد و گفت واقعا قوری قشنگیه یه عتیقی فوقلاده است روباه بیچاره <تصفيق> اون راه پول خوبی بابت این قوری به ما میده سانچو عزیزم کار خوبی کردی به اون روباه بیچاره کمک کردی حالا دیگه نگرانی قصه آینده رو نداریم ما میتونیم از همین فردا از تو چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو نکنه نکنه دلت به حال اون روباه سوخته ها؟ اون حق حقشناسی بود من من هنوزم دلم به این کار تو دلتو بذار کنار پاشو پاشو همین الان برو سراغ اون مرد راهه برو کارو تموم کن پیرمرد در سکوت هنوز به حقشناسی روباه فکر میکرد و پیرزن اونقدر توی گوش اون گفت و گفت و گفت تا اینکه پیرمرد راضی شد قوری و برای فروش به سومعه ببره اما هنوز ته دلش به این کار راضی نبود و به فداکاری روباه فکر میکرد ستاره ها در آسمان دهکده ظاهر شدند و تاریکی شب همه جا رو فرا گرفت فردای اون روز پیرزن همسرش از خواب بیدار کرد تا به صومعه بره و ساعتی بعد پیرمرد قوری برونزی زیبا رو روی میز جلوی راهب گذاشت راهب با دیدن قوری به اون زیبایی شگفت زده شد و گفت وال خدای من چه قوری زیبا و قشنگی من تا من به حال غوری به این زیبایی ندیده بودم من،, من،, من حاضرم در برابر اون هفت سکه طلا بدم ببینم راضی هستی؟ بیا بیا این هم هفت سکه طلا پیرمرد هاج و واج به سکه های خیره شد چند لحظه بعد در حالی که سکه های رو توی مشتش محکم گرفته بود از راهب خداحافظی کرد و به خونش برگشت هنوز چند روزی از فروش قوری برونزی نگذشته بود که مرد راهب به سراغ پیر مرد اومد. جناب سانچو من اومدم پولم رو پس بگیرم. پس بگیری؟ چرا؟ مگه قوری من ایبایی را دیداشت؟ اجازه بدید تا ماجرا رو براتون تعریف کنم. بگو بگو. بعد از رفتن شما دلم خواست توی اون قوری چایی دم کنم. راستش میخواستم ببینم چای توی اون چه تعم و مذهی داره؟ بله قوری رو با ماسه سابیدم ولی ولی میدونی از سوی اون قوری چه صدایی به گوش رسید؟ صدا؟ چه صدایی؟ صدای ناله اونم چه ناله باور کنید دلم داشت از قصه اون ریش ریش میشد حجب بله بعد قوری رو به نرمی سابیدم و این بار میدونی چه صدایی شنیدم؟ صدای قهقاه خنده انگار کسی قوری رو کلک میداد. عجب! جناب سنچو، ماجرا هنوز تموم نشده. بعد تصمیم گرفتم قوری رو پر از آب کنم و روی آتیش بذارم. میدونی با این کار چه اتفاقی افتاد؟ نه، چه؟ اتفاقی. هنوز آب جوش نیومده بود که قوری روی آتیش به جست و خیز افتاد و با نالهی بلند به شکل روباه رنگی در اومد و با شتاب از اونجا دور شد. پیرمرد از شنیدن این ماجرا بسیار شرمنده شد و فورا همسرش رو صدا زد که هفت سکه رو از توی صندوقچه بیرون بیاره پیرزن با دیدن راهب تعجب کرد و خواست علت اومدن راهب رو بپرسه که پیرمرد به اون گفت که بعداً ماجرا رو تعریف میکنه. و هفت سکه طلا رو از همسرش گرفت و به مرد راهب داد و از اون عوض کرد توی دلش از دست همسرش و روباه خیلی خیلی اصمانیده چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه دوباره سر و کلهی روباه توی حیات پیرمرد پیدا شد پیرزن با دیدن روباه اخ کرد و قرولوند کنان جارو رو برداشت و مشغول تمیز کردن حیات شد پیرمرد هم با دیدن روباه از اون رو برگردوند روباه پیش دستی کرد جلوتر رفت و پوزش رو به صورت پیرمرد مالید و گفت منو ببخش. ماور کن آتش اونقدر پاهم و سوزون که تا نیاوردم تو, تو با این کارت آب روی منو پیش اون راه بردی اون حتما فکر میکنه من قصد فریبشو داشتم میدونه تقصیر من دید. حالا دیگه گذشته منو ببخش خواهش میکنم ایلا خوب حالا که انقدر عز میکنه ببخشش دیگه خیلی خوب میبخشمت <تصفيق> حالا که منو بخشیدی اجازه بده جدیدم نقشه جدیدم نقشه دیگه چه ای داری؟ این بار دیگه چه جوری میخوای آب روی منو ببری؟ ها؟ اجازه بده اجازه بده حرف زدم من اومدم جبران کنم میخوام خودمو به شکل ایک عصب نیرومند در میارم نه, نه نه نه نه تو این کارو نمی کنی می کنم فقط همین یک تفنگ میدونی؟ تو شهر بازرگان های سروتمندی هستن که برای حمل کالاهاشون به یه عصب نیرومند احتیاج دارن من میتونم نه نه مرد بذار این با کار خودشو بکنه امتحانش که ضرری نداره شاید این بار بتونیم با فروش اسب پول بیشتری برای روز درموندگیمون پس انداز کنیم هنوز پیرمرد حرفی دال بر رضایتش نزده بود که روباه دمش و دور پاهای عقبی خودش پیچوند سرشو پایین انداخت و سه بار دور خودش چرخید و در یک چشم به هم زدن به اسب نیرومندی تبدیل شد اسبی با یالهای زرین و پوست قهوه‌ای براق و چشمهای درشت و سیاه اسب با صبری سم بر زمین می‌کوبید پیرزن با خوشحالی گفت مرد این اسب آن تا تا سوارش بشی و بری شهر اونو به <تصفيق> مرد آه بلندی کشید و به ناچار سوار بر اسب شد و راهی بازار شد توی راه رهگذران با تحسین به اسب نگاه میکردن و از اون تعریف و تمجید میکردن چه اسب قشنگی عجب پوست خوش رنگی داره خدا, خدا اوی, اوی من من من من. چه یه بلند و قشنگی داره رنگ, رنگ داره داره داره. قهوه زیبایی همون رنگی آه که آه من دوست دارم زیبا. <متصفيق> به میدون شهر که رسیدن مرد بازرگان به پیرمرد نزدیک شد و گفت من حاضرم در برابر این عصق چهارده سکه یه تلا بدار سکه بله, بله بله من حاضرم مرد بازرگان چهارده سکه تلا رو یکی یکی شمرد و کف دست پیرمرد گذاشت و پیرمردم با خوشحالی به طرف دهکده راه افتاد و اما بشنوید از مرد بازرگان بله مرد بازرگان بعد از خریدن اسب به خدمتکارش دستور داد که هرچه کالا و کیسه چای و برنج و نمک خریداری کردند پشت اسب بذاره روبای بیچاره که حالا دیگه همون اسب نیرومند شده بود کمرش زیر بار این همه کالا و کیسه های سنگین در حال شکستن بود ولی از اون جایی که تصمیم گرفته بود به هر نحوی شده به پیرمرد کمک بکنه دندون روی جگر گذاشت و تمام سنگینی بار رو تحمل کرد مرد بازرگان که دید اسب تحمل خوبی داره کیسه های بیشتری رو روی پشت اون گذاشت اما به یک بار اسب زانو زد و به پهلو افتاد و بعد بلند شد و با شتاب از اونجا دور شد و یک راست رفت خونه پیرمرد و پیرزن اونا مثل همیشه توی ایوان نقلی خونهشون نشسته بودن و داشتن کلوچه برنجی با چای می‌خوردن و درباره سکه‌های تلاشون با هم گپ می‌زدن تا اینکه اسب یا همون روباه از راه رسید و همه ماجرا رو برای اونها تعریف کرد و از اونها عذرخواهی کرد که این بار هم نتونسته بود سنگینی بار مرد بازرگان رو تحمل کنه و قبل از اینکه پیرمرد و پیرزن حرفی بزنن دومشو دور پاهای عقبی خودش پیچید سرشو پایین انداخت و سه بار دور خودش چرخید و در عرض یک چشم هم زدن به پسری زیبا و تند و تیز تبدیل شد پیرزن با دیدن پسر شگفت زده گفت خدا یه سانچا یه پسر واقعی خواهش میکنم منو به شهر ببرید و به عنوان نبتون به همه معرفی کنید من صدای خوبی دارم و آوازهای زیادی بلدن میتونم برای مردم آواز بخونم و از این را پول خوبی نصیب شما بشه پیرمرد و پیرزن همچنان مهوه تماشای پسر بودند. در این موقع پسر شروع کرد به آواز خوندن و پیرمرد و پیرزن از صدای خوش و دلنشین اون لذت بردن بله در مدت زمان کوتاهی پسر آوازخان شهرت زیادی پیدا کرد و از راه های دور و نزدیک برای شنیدن آوازهای اون به دهکده می اومدن و در مقابل سکه های تلا نصیب پیرمرد می شد. کم کم وضع زندگی پیرمرد و پیرزند سر و سامان گرفت و روز به روز بهتر و بهتر هم میشد. شد. اونا دیگه تنها نبودند و صاحب فرزندی زیبا شده بودند و تازه برای هم حسابی پسنداز کرده بودند. سالها گذشت و کم کم روباه که همون پسر آوازخان بود از سر و صدا و هیاهوی شهر خسته شد و دلش برای سکوت و آرامش جنگل تنگ شد به پیرمرد و پیرزن گفت خواهش میکنم به من اجازه بدید به جنگل برم چون نوقع شهر منو خسته کرده از بیش ما بری ولی ما دلمون برا تنگ میشه. راست میگه من قول میدم گاه گداری بهتون سر بزنم پیرمرد و پیرزن هرچه برای موندن روباه اصرار کردن اون نپذیرفت و به جنگل برگشت ولی از اون جایی که عمر روباه از عمر انسانها بسیار کوتاهتره، روباه خیلی زود مرد و پیرمرد و پیرزن پیر در جنگل بنای یاد بودی به رسم حقشناسی برای اون ساختند. که هنوز هم پابرجاست جاست عزیزان افسانه حق شناسی روباه رو شنیدید افسانه ای از کشور ژاپن با ترجمه اردشیر نیکپور امیدواریم از این افسانه زیبا لذت برده باشید دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش شما میتونید با تلفن گویای 162 تماس بگیرید و پیشنهاد و انتقادیو که دارین با ما درمیون بذارید سامانه پیامکی رادیو نمایش حتما به ما پیامک بزنید و نظرات خودتون خودتونو در مورد افسون افسانه بگید نشانی ما رادیو نمایش نقط تنظیم برای رادیو زینت صالح پور بازیگران احمد گنجی فریبا متخصص مهدی نمینی مقدم محروخ افزلی منا سفی نگین خاج نسیر اکبر مولایی ایوب آقاخانی علی دریایی اسماعیل بختیاری کارگردان بهرام سروری نجاد دپکتور محمد رضا قبادیفر فر بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی هن. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسون افسانه ای دیگر بدر